دوستان عزیزم، این خیلی عالیه که شما وفادارانه در بررسی کتاب مقدس با ما همراه بودین. زمانی آزم سفری در عهد قدیم شدین و حالا راهی بخش دیگه از عهد قدیم هستین. و اگه تازه به ما ملحق شدین، اینطور فکر کنید که ما از مطالعه انبه کوچک شروع کردیم. اگر یکی از دانش ما از شروع دوری مطالعاتی بودین، حتی عملی بیشتری از این انبیاء کوچک رو یاد خواهید گرفت حالا با هم به درس امروزمون گوش می کنیم زمن بررسی های عهد قدیم به بخش دیگری از کتاب های نبوتی به کتاب حوشه رسیدیم دوازده نبی بعدی که بررسی خواهیم کرد و با هوشه شروع می کنیم معمولا از اونها در کتاب مقدس عنوان انبیاء کوچک یاد میشه. اشعیا، ارمیا، هزقیال و دانیال به عنوان انبیا بزرگ شناخته شدند و هوشات تا ملاکی دوازده نبی هستند که به عنوان انبیا کوچک شناخته شدند. واقعا جای تاسفه که اونها را اینطور تقسیم بندی کردند چون برای ما که این انبیا رو بررسی می‌کنیم چنین به نظر میاد که این دوازده نبی در رده پایینتری از بقیه انبیا قرار دارند که به اونها انبیای بزرگ گفته میشه. اما یادتون هست که گفتیم به اونها انبیاء بزرگ گفته شده چون کتاب اونها طولانی تر هست و به انبیاء کوچک، به این خاطر انبیاء کوچک گفته شده که کتاب های اونها کتاحتر هست. اگه به دوران قدیم به شورای یهودیان برگردید، خواهید فهمید که این کتاب به نحو متفاوتی انتخاب شده بودند. اشعیا و ارمیا، هزقیال و دانیال به عنوان انبیاء پیشکام شناخته شده بودند، و از دیگر انبیا از هوش تا ملاکی به عنوان بعدی یاد شده بود. من فکر میکنم که این عنوان بهتری هست. گاهی از دوازده نبی بعدی که امروز شروع به مطالعه اونها میکنیم به عنوان انبیاء کوچکتر یاد شده اما من دوست دارم که به اونها انبیاء بعدی یا متأخر بگم. همه این انبیا بسیار مهم هستند. کتاب های انبیاء کوچک بررسی اونها رو شروع می کنیم، در یک واحد بندی شده بودن و گاهی به اونها به عنوان دوازده نبی اشاره می شود. من فکر می کنم که این طرز تقسیم بندی بیشتر مورد علاقه من هست. هر دوازده کتاب در یک مجموعه نگهداری می تا هیچ کدوم از اونها از قلم نیفته. اونها بسیار ارزشمند بودن. من میخوام در همین ابتدای بررسی دوازده کتاب تأکید کنم که هیچ چیز کم اهمیتی در مورد انبیای کوچک نیست. شاید عملا این انبیای کوچک انبیای بزرگتری بودند. چون اونها حقایقشون رو بهتر جامب کردند و قادر بودند که آنچه رو که مورد نیاز بود با کلمات اندکی بیان کنند. اولین نفر از این دوازده نبی که بهش می پردازیم حوشه هست. است. نبی محبت خداست. او تجربیات خارق زیادی داشت. خدا بر او ظاهر میشه و میگه از تو میخوام که با یک فاحشه ازدواج کنی اون فاحشه جومر بود خدا گفت من میخوام تو با جومر ازدواج کنی و میخوام که او رو محبت کنی و با او طوری رفتار کنی که گویی او بهترین و خدا شناسترین زن روی زمینه البته هوش این رو درک نمیکرد اما میدونست که خدا داره اینو بهش میگه و این کارو انجام میده بعد از اینکه هوشا با جمر ازدواج کرد و بعد از اینکه او رو بی قید و شرط محبت کرد که واقعا شبیه محبت خدا بود، جمر دوباره به فاهش خانه بازگشت. نزد دلدادگان قبلیش رفت و دل هوشا رو شکست. هوشا در مقابل خدا بر خاک میفته و بعد از مدتی خدا میگه حالا میخوام خوام بری و جمر رو به خانه برگردونی. مدتی او رو در قرنطینه بذار تا مطمئن بشی که هیچ بیماری نداره. بعد او رو به خانه ببر. این بار فرزندانش هم بودن خدا گفت جمر رو نزد خودت و فرزندان برگردون و او رو چنان محبت کن که گویی خداش زن روی زمینه. خب البته هوشب باز هم درک نمیکنه اما جومر رو پیدا میکنه و او رو به خانه برمیگردونه چون مطمئن بود که خدا گفته او رو به خانه برگردونه. بعد از عبور از این تجربیات در زندگی خدا به هوشه معموریت میده که نبی محبت خدا برای اسرائیل باشه. حوشا و آموز تنها انبیایی هستند که برای اسرائیل در پادشاهی شمال موعظه کردند. بقیه انبیا اساساً برای خدمت در پادشاهی جنوب یا یهودا معمور شدند. یونس در نینوا خدمت کرد که پایتخت دشمنان پادشاهی شمال بود. او عملاً در پادشاهی شمال و جنوب خدمت نکرد. اگر شما انبیا رو بر این اساس تقسیم بندی کنید که آیا اونها در شمال برای اسرائیل و یا در جنوب برای یهودا خدمت کردند، متوجه میشید که فقط دو نفر در شمال خدمت کردند. آموس و هوشه حوشه به شمال رفت و معزه های, های خود رو در اونجا به گوش مردم رسوند. آموس هم همین کار رو کرد آموس در جنوب زندگی میکرد وقتی کتاب آموس رو بررسی میکنیم خواهیم می دید که او یک نبی نبود وقتی خدا از او دعوت کرد که یک نبی باشه او انجیر چینی و میکرد. اما دعوت خدا رو شنید که به شمال بره و معزه های آتشین و نبوت در پادشاهی شمال بکنه. چندین بار کاهنین اون منطقه از او خواستند که به خانه خودش برگرده و به کار خودش مشغول بشه. هوشه در پادشاهی شمال زندگی میکرد و بومی اونجا بود. هوشه ارمیای پادشاهی شمال بود. او به اصارت رفتن پادشاهی شمال رو پیشگویی کرد. بسیاری از محققان محافظکار او کار او می‌دونند. وقتی هوشع پیام خودش رو در قسمت شمالی اسرائیل موعظه میکرد، او در واقع محبت خدا رو موعظه میکرد. یک بار وقتی در کتابخانه بزرگ خودم دنبال مطلبی در مورد محبت خدا بودم، نتونستم پیدا کنم. تا حالا چند تا کتاب در مورد محبت خدا خوندید؟ من فکر میکنم که باید کتابهای زیادی در مورد محبت خدا داشته باشیم، چون اون موضوع بسیار مهمیه. کتاب هوش، کتابی در مورد محبت خداست. هوشه زمانی محبت خدا را برای پادشاهی شمال معاعظه میکرد که قوم خدا تماما از خدا برگشته بودند و در انواع گناهان گرفتار بودند اونها بدپرستی میکردند این زمان وحشتناکی به لحاظ روحانی و اخلاقی در پادشاهی شمال بود هوشه وقتی محبت خدا را برای اونها معایظه میکرد واقعا توانست توجه اونها را به خود جلب کنه. هوشه داستان خودش با جومر رو برای اونها نقل کرد. هوشه گفت که چون خدا از هوش خواسته بود جومر چطور این محبت بلاشرط رو دریافت کرده هوش گفت که چطور جومر اعتنایی به این محبت نکرده و به نزد عاشقان قبلیش برگشته او برای اونها شرط داد که چطور خدا از او خواسته بره و جومر رو پیدا کنه او رو برگردونه و دوباره محبت کنه حالا بعد از اینکه داستان شخصی خودش رو بیان میکنه معزش رو شروع میکنه و میگه خدا هم در مورد شما اینطور احساس میکنه شما دقیقا همون کاری رو با خدا کردید که جمر با من انجام داد. وقتی که بوتها رو پرستید، دقیقا همین کار رو با خدا می کنید. پرستی شما هم به لحاظی زنای روحانی است چون که شما وفادار نیستید. وقتی که در فساد اخلاقی زندگی می کنید و توجهتون به امور دنیوی هست، مرتکب زنای روحانی می شید. شما همون کار رو با خدا می کنید که جمر با من انجام داده. این پیغام اساسی نبی بزرگ حوشه بود. حقایق پیغام حوشه بر محبت بی و شرط خدا بر اسرائیل متمرکزه. وقتی ما کتاب مراسی رو بررسی می کردیم، گفتیم که اگرچه انبیاء عهد قدیم به خاطر مععزه های آتش و سلفور و محشر و تاریکی معروف شدهاند عملا پیغام امیدی هم به همراه داشتند وقتی که دوازده نبی کوچک رو بررسی می کنیم، به این توجه داشته باشید که. همه‌ی اونها خدای محبت بیقید و شرط رو موعظه می‌کردند. مکاشفه بزرگ ارمیا رو به یاد بیارید، وقتی او در غاری نشست و مراسی رو نوشت، وقتی که او در جلجتا نشست و گفت: میدونم که محبت ناپذیر تو هرگز تمامی نداره، میدونم که هرگز دست از محبت ما نمی کشی و این مایه امید منه و از این سبب ایمان دارم که منو نجات خواهی داد، وقتی مسیحا آمد، او در همان نقطه مصلوب شد که ارمیانش هست و مراسی رو نوشت. محبتی که ارمیان در موقع نوشتن مراسی بر اون تمرکز کرد همون محبتی بود که حوشه ماعزه میکرد. اون همون محبت خدا بود که پولس رسول در اول قرنتیان 13 بر اون متمرکز شده وقتی که میگه محبت خدا فنا چون بی غید و شرطه. پولس به ما میگه که محبت خدا الهامیه چون اگر شما کسی رو اونطور که هوشه، جمر رو محبت کرد محبت کنید محبت خدا تأثیر شگرفی بر آنان خواهد داشت وقتی بر محبت خدا متمرکز بشید و وقتی بر پیغام حوشه نبی متمرکز بشید خواهید دید که بهترین کتاب در مورد محبت خدا کتابی هست که حوشه نوشته به عنوان یک شبان من مکررن به کسانی که تجربه بیوفایی در رابطه زناشوییشون دارند توصیه می کنم که این کتاب را بخونم گاهی شاید مردی با دلی شکسته بیاد چون که مانند حوشه بیوفایی همسرش رو تجربه کرده گاهی زنی کاملا در هم ریخته میاد چون که شوهرش بیوفایی کرده حالا وقتی چون این چیزی پیش میاد یک ایماندار چی کار میکنه؟ به عنوان یک شبان به خیلی از این گونه افراد گفتم که اراده خدا برای این رابطهی ای که شما دارید اینه که فقط برای همسرتون باشید منحصرا همسرتون رو دوست داشته باشید. اگر همسر شما فقط با شما زندگی نمیکنه من باور ندارم که خدا به هیچ کدوم از فرزندانش فرمان داده باشه که چنین رابطه ای رو داشته باشد بر همیشه با این افراد داستان هوشه رو در میون میذارم و میگم اما میدونید شاید خدا از شما دعوت کرده که یک هوشه باشید خدا شاید فیزی رو که به هوشه بخشید به شما هم ببخشه و اون شخص رو که به شما بی کرده آنگونه که هوشه جمر را محبت کرد محبت کنید من ایمان دارم که این یک چیز اختیاری هست. کتاب مقدس نمیگه که یک ایماندار باید همسر بیوفا رو ترک کنه. زمانهایی هست که یک مرد یا زن شاید از خدا پیغامی بگیره که همسری رو که به او بیوفایی میکنه با محبت خدا مانند هوشا محبت کنه. محبت هوشا به جومر سرمشق زیبایی برای ما در کتاب مقدس هست که وقتی همسر ما بیوفایی میکنه چیکار کنیم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنید ملاحظه کنید که خدا کسانی را که برای خدمتش دعوت میکنه چطور توصیف میکنه وقتی خدا از کسی میخواد که شبان باشه از چه کسانی دعوت میکنه که شبانی کنند خدا از کسانی دعوت میکنه که مانند موسا، داوود و آموس شبانی میکردند خدا از این افراد دعوت کرد که قومش رو شبانی کنند شبانان روحانی اونها بشند. در عهد جدید وقتی خدا میخواد کسی بره و سیاده انسان انسانها بشه خدا از چه کسی برای این صيادی استفاده میکنه از ماهی گیران چونکهسیاددان ماهی میدونند که چگونه ماهی رو صید کنند و میدونند که چطور باید سیاد انسان ها باشن. خدا به رهبران روحانیش کسانی که به خدمت دعوت میکنه تجربیات واقعی در عرصه زندگی میده تا بتونند اساس اون تجربیات و خاندگیشون خدمت کنند. این باعث میشه که پیغام رهبران پیام بیداری باشه تجربیات زندگی هوشب باعث شد وقتی او پیغام اصلیش را معظزه می کرد مورد قبول واقع بشه او محبت خدا را از تجربیات خودش نشون داد شاید شما این کلمات رو که بر روی دیوار اتاق کوچک یک ماسسه روانی نوشته شده شنیده باشید که توسط کسی که دیوانه بود و در اون اتاق زندگی می کرد نوشته شده این برداشت یک دیوانه صبور از محبت خدا هست. محبت خدا بسیار عظیمتر از چیزی است که زبان یا قلم بتونه بیان کنه اون به فراتر از ستارگان میرسه و تا اعمق جهنم نفوذ میکنه. اگر آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب بشه هر درختی که روی زمین هست قلم بشه و تمامی کاتبان دنیا جمع بشن و محبت خدا رو بنویسند دریاها خشک خواهد شد. آسمان ها یکی پس از دیگری تمام خواهند شد و محبت خدا همچنان ادامه خواهد یافت. و مقدسین و فرشتگان خواهند خواند، آه محبت خدا چقدر غنی و خالص هست، قوی و غیر قابل اندازگیری و تا عبدالآباد دوام خواهد داشت. محبت خدا فقط سرود مقدسین و فرشتگان نیست. محبت خدا سرود هوشه هم بود. وقتی که شروع می کنید به خوندن کتاب هوشه مهمه که بفهمید هوش واعز بزرگی بود. اگرچه محبت خدا حقیقت اساسی پیغام هوشه بود، اما این تنها پیغام موعظه حوشه نبود. مایلم که خلاصه ای از معایزه های هوشه رو بهتون بدم که بتونید متوجه بشید که شرایط روحانی و سیاسی که باعث شد هوشه در اون شرایط معایزه کنه چی بود؟ این معایزه ها به شما امکان میده که ببینید اون چه معایزه بزرگی بوده. این انبیاء پیر بسیار بیریا بودند، معایزه های اونها بسیار رک و جسورانه بود. اونها سخنگویان بزرگی بودند، گاهی اونها از موعظه های عملی ارمیا و حزقیال استفاده کردند که توجه مخاطبینشون رو جلب کنن اونها حقیقتا سخنگویان بزرگی بودند اولین اصل موعظه کردن فن بیان هست. نظاهرسازی. سازی این انبیاء عهد قدیم اولین اصل موعظه رو میدونستند انبیاء عهد قدیم در صحبت عمومی نمایش اجرا نمی کردن. شما نباید هرگز از چیزهایی که انبیاء میگفتند حیرت کنید اونها واقعاً اون رو واضح بیان می کردن. اونها خیلی رکگو بودند هوش هم در عهد خودش اینگونه مععزه می کرد به بخشی از مععزه های او گوش کنید ای بنی اسرائیل کلام خدا را بشنوید زیرا خداوند رو با ساکنان زمین محاکمه ای هست چونکه که نراستی و نه معرفت و نه رعفت خدا در زمین می باشد شما دروغ می گویید لعنت می کنید قتل و دزدی و تعدی و زناکاری می کنید. خونریزی پشت خونریزی به این دلیل زمین شما حاصل خیز نیست. زمین ماتم می کند. همه ساکنان با حیوانات دریا و مرغان هوا کاهیده می شوند و ماهیان دریا نیز تلف می گردند. چهار نفر از پادشاهانی که در زمان حوشه در اسرائیل حکومت کردند کشته شدند. این همون چیزی بود که حوشه می گفت خونریزی به خونریزی ملحق می شوند. زنا و شراب شیره دل ایشان را می باید قوم من از چوب خود مسئلت می و عصای ایشان به دیشان خبر میدهد. زیرا که روح زناکاری ایشان را گمراه کرده و از اطاعت خدای خود زنا کردند بر قله های قربانی میگذرانند و بر تلها زیر درختان بلوت و سپیدار و ون چون که سایه خوب دارد بخور میسوزانند از این جهت دختران شما زنا می و عروسهای شما پاهشگری مینم و چون زنا کرده اند خدایان غیر را خدمت کرده اند مرا ترک می کنند. حالا به یک پیغام شجاعانه دیگه نگاه میکنیم. معزه حوشه شفاف و مربوط به بدپرسی بود که بزرگترین مشکل قوم خدا در پادشاهی شمال در زمان معزه هوشه بود. قوم اسرائیل به خاطر بدپرسی در فساد بودند. حوشه بسیار رک بود و وقتی موعظه میکرد، او می گفت قوم اسرائیل شرابخاری رو تمام کردند و حالا دنبال فاحشه ها رفتن اونها کارهای شرماور رو بیشتر از عزت دوست دارند. ببینید هوشا چطور معیزه کرده. او می گه جمعی ایشان زناکارند مثل تنوری که خبازان را مشتعل سازد که بعد از سرشتن خمیر تا مخمر شدنش از برانگیختن آتش باز می ایستد." در یوم پادشاه ما سروران از گرمی شراب خود را بیمار ساختند و او دست خود را به استهزا کنندگان دراز کرد زیرا که دل خود را به مکاید خیش مثل تنور نزدیک آوردند. و صبحگاهان آن مثل آتش ملتهب مشتعل می شود. جمیع ایشان مثل تنور گرم شده اند. داوران خیش را می و همه پادشاهان ایشان می و در میان ایشان کسی نیست که مرا بخواند. افرایم با قوم ها مخلوط شده است. افرایم قرص نان است که برگردانیده نشده است منظورش این بود که این قوم مثل کیکی بودند که یک طرف اون پخته شده و طرف دیگر اون خام هست و به هیچ دردی نمیخوره در مورد خادمی شنیدم که باید هر سال تصمیم گرفته میشد که آیا باید به خدمتش در اون سازمان امسال هم ادامه بده یا نه برخی از کسانی که در این سازمان خدمت میکردند نزد او آمدند و گفتند که ما تصمیم گرفتیم که شما سال آینده برگردید. اون خادم گفت خیلی خوشحالم که این رو میشنوم. متشکرم از خدمات من قدردانی کردیم. این مردان گفتن ما چیزی در مورد قدردانی از خدمت شما نگفتیم. بی پرده بگم، برخی از ما فکر میکنیم که کلیسا نیازی به خادمی مثل شما نداره و شما تقریبا همون چیزی هستید که هیچ نیازی بهش نداریم. خب این چیزی که هوشه داره میگه. وقتی میگه افراد مانند قرس نان نیست که برگردانیده نشده میگه شما مانند این نان به درد نمیخورید. این بسیار واضح ایشان رجوع می کنند اما نه به حضرت اعلی مثل کمان خطا کننده شده اند سروران ایشان به سبب قیز زبان خیش به شمشیر می و به سبب همین در زمین مصر ایشان را استهزا خواهند نمود. ای سامره چه مدت طول خواهد کشید تا شخصی امین است و ظهور کند؟ به درستی که باد را کاشتند پس گردباد خواهند روید. این اظهار بسیار آشنایی است که از موعظه هوشع برمیاد. اسرائیل بلعیده خواهد شد و الان مانند امت‌ها مثل ظرف ناپسندیده میباشد زیرا که ایشان مثل گورخر تنها و منفرد با آشور رفتند جلال اسرائیل مانند پرنده‌ای پر می‌کشد وقتی شما موعظه های هوشع مطالعه می‌کنید متوجه میشید که خدا در مورد پادشاهانی که بنی اسرائیل در زمان سمویل از خدا خواستند چه احساسی داره حوشه اینطور معیزه کرد تمامی شرارت اونها از جبعه شروع شد جبعه جایی بود که اونها از سمویل پادشاه خواستند و اونجا من از اونها نفرت داشتم من اونها را از سرزمین خودم به خاطر بدپرستیشون بیرون خواهم راند دیگر اونها را محبت نخواهم کرد من در خشم خودم به شما پادشاهان دادم و اونها رو در غضب خودم برداشتم. خدا در مورد پادشاهانی که بنی اسرائیل خواستند این گونه فکر میکرد. ای اسرائیل از ایام جبعه گناه کرده اید. آنجا ایستادند و جنگ با فرزندان شرارت در جبعه به ایشان نرسید. وقتی که کتاب داوران رو بررسی میکردیم این طور خاندیم. شما شرارت رو کاشید و تباهی گناه روزفصونده درو کرده اید. شما پاداش اعتماد بر دروغ رو کسب کردید. باور داشتید که ارتش‌های قوی و بزرگ می توانند قومی را نجات بخشند. افرایم باد را می‌خورد و باد شرقی را تعاقب می‌کند. تمامی روز دروغ و خرابی را می‌افساید و ایشان با آشور عهد می‌بندند و روغن به جهت هدیه به مصر برده می‌شود. در مقابل وعده‌های پوچ اونها را دریافت می‌کنند. تمامی روز دروغ و خرابی را میفزاید و ایشان با آشور عهد میبندن و روغن به جهت هدیه به مصر برده میشود در مقابل وعده پوچ اونها را دریافت میکنند. این زمانی بود که آشوری تهدید می‌کردند میکردند که خواهند آمد و پادشاهی شمال را به اثارت خواهند برد. اینجا باز هم معیزه از حوشه هست که از همون نوع معیزه های قبلیه. کاهنین هر طور که باشند مردم هم همون طور خواهند بود. این هوشع بود که این عبارت رو ابداع کرد. او میگفت: ای کاهنان، به کس دیگه ای اشاره نکنید. روی سخن من با شماست. اشعیا، ارمیا، حزقیال و هوشه به وخامت حال و هوای روحانی پادشاهی شمال را از رهبران روحانیان پادشاهی می‌دانستند. هوشع این رو به صراحت اعلام کرده که مسئول مستقیم کاهنین هستند. او میگه فکر نکنید من با کس دیگه ای صحبت میکنم روی سخن من مستقیم با شماست. شاید داستان واعظی رو شنیده باشید که سرایداری داشت که هر روز یک شنبه میامد و و میگفت کشیش امروز موعظه بسیار خوبی برای اونها کردی این واعظ با خودش فکر میکرد او اوکی پیغامی رو که من به او میدم خواهد گرفت یه روز هوا خیلی بد بود و هیچ کسی به کلیسا نیومد فقط واعظ و سرایدار بودند واعظ پس از مراسم برگزاری پرستش موعزه بسیار شگفتانگیزی کرد و بعد فکر کرد که او یقینا امروز پیغام رو گرفته. دم در سرایدار به او گفت موعزه بسیار عالی بود که اما افسوس که هیچ کس نبود اون رو بشنوه. من فکر می کنم که حوشه به این کاهنین می گفت که من روی سخنم با شماست. فکر نکنید که با کسی دیگه ای صحبت می کنم. به علاوه این پیغام برخی برقی ها هم در کتاب حوشه وجود داره نبوت هست که در لفافه پیچیده شده و برای درکش لازمه که نمادها رو بدونید. مثلا نام بچه هایی که هوشه از جمرداشت داشت حاوی هایی هستند. لوروهامه نام یکی از بچه های او هست و به معنی کسیه که زیاد رحم نداره. مفهومش این هست که اصارت آشوری ها خواهد آمد و خداوند وقتی که اسارت میاد رحمتی نشان نخواهد داد. نام دیگر فرزندش لوامی بود که معنیش این هست. این مال من نیست. قوم من نیستند. به خاطر طبیعت رابطه ای که هوه با جمر داشت اون نمیدونست که آیا بچه ها از هوشه هستند یا نه. وقتی لوامی به دنیا اومد، هوش این نام رو به او داد. او مال من نیست. محققینی که نبوت های کتاب مقدس رو بررسی می کنند، به ما میگند که یک پیغام نبوتی واقعی در این نام ها هست. اونها میگن که لوامی اشاره به یک دوره از زمان داره و این نبوتیه که میگه دوره ای در تاریخ خواهد اومد که دیگر قوم یهود قوم برگزیده خدا نخواهند بود. چون اونها تصمیم گرفتند که برگزیده نباشند. میبینیم که این در دوره ما هم اتفاق میفته. در نامه پولس رسول به رومیان بابهای 9 تا 11 پولس این دوره رو شرح میده. بعضی ها این رو پرانتز بزرگ میگن. چون قوم یهود خدا رو رد کردن، خدا به قوم غیر یهود رو آورد. برای اینکه اسرائیل رو به خاطر روگرداندن از خودش تنبیه کنه، خدا قوم غیر یهود رو انتخاب می کنه. وقتی که خدا به حد کافی با انتخاب قوم غیر یهودی اسرائیل رو تنبیه بکنه، او باز هم به سوی اسرائیل باز خواهد گشت و تمامی اسرائیل نجات خواهند یافت. تمامی این انبیایی که به این موضوع اشاره کرده اند، یک بازگشت روحانی قوم اسرائیل به سمت خدا و بازگشت خدا به سمت اسرائیل رو پیشگویی کردند. دانشجویان نبوت این پرانتز بزرگ رو دوره لومی مینامند در دوره ما خدا به قوم یهود میگه مال من نیستید، شما قوم من نیستید. اما روزی خواهد اومد که قوم یهود باز هم قوم خدا خواهند بود. اینجا بعضی از معیزه بزرگ هوشه هست، قوم من تصمیم گرفتند مرا ترک کنند. پس من آنها را به بردگی محکوم کردم و کسی اونها را آزاد نخواهد کرد این اشاره به اسارت رفتن اسرائیل توسط آشوریان بود این اسارت در نهایت به مرگ منجر می شد. قوم پادشاهی شمال هرگز از اسارت آشوری ها باز نگشتند و هوشع پیشگویی کرده بود که اونها باز نخواهند گشت هوش هم با پولس و بیا متفقا به این اشاره میکنند که در روزهای آخر قوم خدا بازگشت روحانی خواهند کرد. چون هوشع داشت به پادشاهی شمال می میکرد، او در مورد بازگشت از اسارت بابل بعد از هفتاد سال چیزی نمیگه، اما به اونها یک پیغام امید میده. تمامی نمبیا در معیزه هاشون پیغامی از امید دارن، اما برای اینکه پیغام امیدش رو بده، هوشع ناچارن از روزهای آخر به عنوان روزهای امید یاد میکنه. ایامی که بازگشت روحانی اسرائیل به سوی خدا خواهد بود. و خدا به سوی اسرائیل باز خواهد گشت. این بازگشت هنوز اتفاق نیفتاده. اگر سرزمین مقدس رو دیده باشید، میدونید که بازگشت جغرافیایی قوم یهود به سرزمینشون واقع شده. اما هنوز بازگشت روحانی پیش نیومده. قرار هست که واقع بشه. بازگشت روحانی در آینده اتفاق خواهد افتاد، اما پیغام و امید هوشه به زیبایی بسیار مععزه شده. حوشا و و سخنور بسیار قوی بوده و اینطور معیزه موعظه میکنه وادی اخور را به دروازه امید مبدل خواهم ساخت و در آنجا مانند ایام جوانیش و مثل روز بیرون آمدنش از زمین مصر خواهد سرایید آشکارا حوشا اینجا به چیزی در ایام آخر اشاره میکنه و اینطور طور موعظه میکنه تمامی گروه با هم خواهند سرایید خدا میکارد او همه چیز داده است بر لروهامه رحمت خواهم فرمود و به لوعمی خواهم گفت تو قوم من هستی و آنها جواب خواهند داد تو خدای ما هستی این نبوت بازگشت روحانی قوم اسرائیل هست چیزی که هوشع اینجا موعظه میکنه هنوز اتفاق نیفتاده او بازگشت قوم پادشاهی شمال یا اسرائیل رو به سمت خدا و بازگشت خدا به سوی اونها رو پیشگویی میکنه بیایید نزد خداوند بازگشت نماییم زیرا که او دریده است و ما را شفا خواهد داد. او زده است و ما را شکسته بندی خواهد نمود. پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. طلوع او مثل فجر یقین است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر که زمین را سیراب می کند خواهد آمد. وقتی که دوازده نبی بعدی را بررسی کنیم خواهیم دید که همه اونها این بازگشت روحانی اسرائیل و احیای مجدد اسرائیل رو پیشگویی کردند اما بسیاری از این نبوتها هنوز انجام نشده زکریا ایامی رو پیشگویی کرده که در اون قوم یهود دوباره واعظین بزرگی خواهند شد درست همانند واعظینی که در ایام این دوازده نبی بزرگترین واعظین روی زمین بودن زکریا میگه روزی خواهد آمد که همه چیز دوباره به حال خود باز خواهد گشت زکریا میگه مردم به دامن یهودیان خواهند آویق و خواهند گفت خدا با شماست و ما میخواهیم صدای او رو بشنویم. هنوز این اتفاق نیفتاده و باید این پیشگویی به انجام برسه. حوشب بار قلب خدا رو موعظه میکنه. بار قلب خدا نسبت به قوم اسرائیل که اونها رو دوباره به این بازگشت روحانی دعوت میکنه. حوشب با شیوایی تمام این طور میکنه. من قربانی های شما رو نمیخوام، من محبت شما رو میخوام، هدایای شما رو نمیخوام، میخوام که منو بشناسید. حوشه برای اینکه قلب اونها رو متوجه خدا کنه، مانند ارمیا اینطور معزه میکنه. برای خود به ادالت بکارید و به حسب رحمت درون مایید و زمین ناکاشته را برای خود خیش بزنید زیرا که وقت است که خداوند را بطلبید تا بیاید و بر شما ادالت را بباراند. به سوی خدا بازگشت کنید و همیشه در انتظار دریافت بیشترین‌ها از خدا باشید. بعضی ها میگن اگر از خدا انتظار چیزهای بزرگ داشته باشید، باید سعی و کوشش زیادی برای خدا بکنید. این چیزیه که هوشمع اویزه کرده. وقتی قوم اسرائیل در پادشاهی شمال داشتن داوری خدا رو تجربه میکردند و به دست آشوریان به اسارت می‌رفتند، هوش به اونها میگه که خدا هرگز قصد نداشت که اونها پادشاه داشته باشند. حوشه با اونها یادآوری میکنه کنه که این پادشاهان اونها بودن که باعث مشکلات اونها شدند. حوشه میگه اما من از زمین مصر تا حال یهوه خدای تو هستم و غیر از من خدای دیگر را نمی شناسی و سوای من نجات دهندهی نیست. پادشاه شما کجاست؟ چرا از او کمک نمی تمامی رهبران زمین کجا هستند که شما اشتیاق اونها را داشتید؟ حالا اونها بیاند و نجاتتون بدن. اینجا بود که خدا گفت از غضب خود پادشاهی به تو دادم و از خشم خیش او را برداشتم. وقتی خدا در مورد اسرائیل صحبت میکنه، او گاهی اونها را افرایم صدا میکنه. خدا میگه اسیان افرایم بسته شده و گناه او محزون گردیده است. دردهای ذهن مثل زنی که میزاید بر وی آمده است و او پسری نادانشمند است. این تمثیل بسیار زیبایی هست اون بسیار شیوا و زیباست حوشب اونها میگه خدا میخواد که به سوی او بازگشت و توبه کنید تمامی انبیا پیام توبه رو موعظه کردن او میخواد که قلبا توبه کنید تا اینکه بتونه شما را به لحاظ روحانی احیا کنه اما شما مانند تفلی در رحم مادر هستید که میگه من نمیخوام متولد بشم در تیه به دنیا آمدن مبارزه میکنه و از به دنیا آمدن امتناع میکنه این تمثیل بسیار شیوایی هست بچه ای رو در شکم مادر تصور کنید این بچه میتونه متولد بشه حیات پیدا کنه و تجربیاتی داشته باشه که همه ما در زندگی داشتیم اما چون این بچه نمیدونه خارج از شکم مادرش چه چیزی وجود داره نمیخواد متولد بشه بسیاری از مردم به لحاظ روحانی در این جایگاه قرار دارند خدا میخواد که تجربه ی تولد تازه رو به اونها بده اما اونها از ورود به این تجربه وحشت دارند. پس مثل جنینی در شکم مادر هستند که دائما از متولد شدن میترسه و با اون مبارزه میکنه. هوش معزش رو اینطور به پایان میبره. کیست مرد حکیم که این چیزها را بفهمد و فهیمی که آنها را بداند؟ هر کسی فهیم هست گوش کند. در کتاب حوشه شما تمثیل میبینید. همونطور که قبلا تمثیل رو شهر دادم منظورمون این نیست که اینها افسانه هستند و یا اتفاق نیفتادن. الهیدانان تجربیات و هوشار رو مورد بحث قرار میدن آیا اون یک تجربه عملی بوده آیا برای او واقعا پیش اومده بوده و یا آیا واقعا یک روز پس از ازدواج جمر به دنبال کار خود رفته آیا او دست خدا رو و سودی که از این آیدش میشه میبینه آیا او به لحاظ روحانی روش میکنه و پیغام محبت خدا رو در طی تجربیاتش میبینه یا فقط به دلیل اینکه واعظ بزرگی بوده اینها رو به صورت تمثیل به کار برده یا در طی تجربیات هوشه زمانه خیلی بد بوده درست مثل دوره فعلی خواه عملی بوده و یا یک تمثیل این مسئله اصلی نیست و چیزی از حقیقت کم نمیکنه یادتونه که گفتیم تمثیل داستانیه که در اون مردم جاها اشیا معانی دیگری دارند حالا خواه داستان هوشه عملا حقیقت داشته یا نه تجربیات زندگی هوشه یقینا معانی تمثیلی در بر دارند تجربیات هوشه تمثیل‌های دردناک بودند پیام تمثیل دردناک هوشه محبت خدا بود یادتون باشه شما نمیتونید با گناه محبت خدا را از دست بدید یا نمیتونید با انجام کاری محبت خدا را به دست بیارید محبت خدا بی غید و شرطه او به هر حال ما رو دوست داره تمامی انبیا این رو به ما میگن این پیام بزرگ کتاب هوشه هست آیا تا حالا این محبت بی غید و شرط خدا رو تجربه کردید؟ اگر نکردید همین الان در دسترس شما هست مثل جومر نگید نه مثل بنی اسرائیل نگید نه امروز به محبت خدا بگید آری عزیزان محبت بیقید و شرط چیزی که همه ما مشتاق اون هستیم و حقیقت اینه که تنها خدا میتونه اون رو به ما بده. محبتی رو که اون مشتقانه به شما نصار میکنه بپذیرین. محبت اون میتونه مثالی باشه برای ما که همدیگر رو چطور محبت کنیم. ایسا به شاگردانش گفت پیروان اون باید از ابراز محبت به یکدیگر شناخته بشن. این هفته از خدا بخواید که محبتش رو از طریق شما به اطرافیانتون نثار کنه، شما از کاری که خدا میتونه بکنه، حیرت خواهید کرد، تا برنامه بعدی خدا رو به خاطر محبت هر روزش شکر کنید و از اون بخواید که نشون بده چطور همدیگر رو محبت کنید.